که دروغ یک مرض خانمان سوز هست اختلافات سنگینی را به بار می آورد رزق انسان را حرام می کند و خداوند متعال را ناراض می کند را فراری می دهد جهنم را واجب می کند این گناہ بزرگی رو دروغ دارد حالا قبلا تأکید کردیم که دروغ را تعطیل کنیم و تعطیل کردن دروغ برای ترک هر کاری راهای مختلفی داره از کارها و راهای مختلف ترک دروغ و بزرگترین راهش اراده قوی هست اگر بخواهیم یک گناه رو ترک بکنیم و از یک گناه فاصله بگیریم باید اراده رو قطعا صد درصد قوی بکنیم تا زمانی که اراده رو قوی نکردیم هیچ کاری رو نمی توانیم انجام بدهیم. اگر اراده داشته باشی فلان کار رو میکنم کار بسیار سنگین هم باشد کار سودت میگیرد اما اگر اراده نداشته باشیم کار انجام نمیگیرد اراده ها رو پخته کنیم ترک کار میشه پس برای ترک هر گناهی اول عزم و اراده قوی قلبی ضروری هست اونو باید خداوند متعال هم برای انجام کا که به نبی کریش می فرماند الله اراده کردی پس توقل کن و انجام بده ثابت قدم بودن صبر کردن اراده کردن کسی دیخواست سیگار ترک بکنه فکر میکنه سنگین تریاغ ترک بکنه فکر میکنه سنگینه چیزا ظاهری میگم در سور هر چیز ایک نوع ایتیاد داره تنها سیگار ایتیاد نیست سیگار اعتیاد داراست موار اعتیاد دارند دروغ هم یک نوع اعتیاد هست غیبت هم یک نوع اعتیاد است اینها معتاد دروغن بعضی معتاد غیبتن بعضی معتاد فاحشیان بعضی معتاد به اصطلاح اشراف نفسن بعضی معتاد پست و مقامن بعضی اعتیاد پول دارند هر کس یک اعتیادی دارد از انسانها خالی نیستین عادت‌هایی که اونها دیگه بسیار پافشاری می کنند ترک هر عادتی هر نوع ایتیادی باشد اول اراده قوی بعد هنگام ترک استقامت بر ترک و توکر بر الله رب العالمین اون کار صدت می گیرد این کارو بکنین بکنیم موفق می شید کسی بخستیگار رو ترک بکنه وقتی ترک کرد بر عمل استقامت مردانگی بعد بخارج بده و اراده رو قوی بکنه قطعا اون چیز از زندگی می بیرون میگن زیاد الحق رئیس جمهور پاکستان سیگار اینقدر زیاد میکشید که سیگارو سیگار روشن میکرد پس سیگارش خاموش نبود سیگار که شد سیگار باید روشن میکرد پوکشو میانداخت همین کل کارش اینجوری بوده در افسخران میگه آقا هر کاری اراده قوی میخواد اراده قوی واسه ترک قطعا میسواد روی تریبون سیگار خاموش میکنه میاندازه تا آخر اون سیگار نمیکشه ان یک بار سیگار و انداز میگه من نمیکشم، دار نمیکشه. اراده میخواد پس ترک گناه ها اراده میخواد پس باید گناه ها رو وقتی بخوایم ترک کنیم دروغ از بدترین گناه که یک سری گناه های بسیار زیادی رو خود دروغ با خودش می پس هفته گذشته دست اول دروغ بود و تاکیل کردین شروع کنید اراده ها رو قوی کنید، یادداشت کنید با خودت. خودت یادداشت بکنی ما دروغارو که فراموش کنیم و رها بکنیم حالا چقدر کسی برای خودش خواسته تاقیب کنی قطعا موفق شده اگر خواسته باشی با هم تناشمانم ما هم ما هم شما هم با هم انشاءالله سعی کنیم دروغو تاقیب کنیم حالا دروغ از گناه بسیار سنگین هست نبی مکرم اسلام فرمودن گوش کنید نبی کریم فرمودن که التوجار هم الفجار التوجار هم الفجار توجار فاجرانن گو تجرمه فاجرانند فاجران گفتن فاجران چرا یا رسول الله گفت چون که اینها برای فروختن ای کالای خودشون دروغها قسم‌های دروغی نمیخورن دروغ به ق... قسم نه خوره دروغ اینجوریه اونجوریه ژاپنیه آمریکاییه فلانی فلانی ده دروغ میگه خودشان میدونن چی بی ای است این قسمه دروغین در یه حدیث دارین که البیان بالخیار فروشنده و خریدار در کالاش اختیارات دارن دوباره فرمودن که ان وصدقا و صدقا بوری که فی بیعهما اگر عیبو ظاهر کردن عیبو گفتن و صداقت بخرج دادن بوری که فی بیعهما در, در بیانها برکت می آید در معامل برکت می آید در مال برکت می آید و این کتما و کذوا اگر عیب و ضرور گفته محیقت برکتو بعیه و برکت معاملین ها برداشته میشه برکت برداشته میشه داره میفروشی کالا قیمتش ده هزار هست به صد هزار میفروشی یک از این اصلا آرائشه من زنزد گفت که من میگیرم هفت هزار تومن از شابهار هفت هزار میارم شیش هزار میارم اما این داخل شهرستان نزده هزار تومن میفروشن این جایزه گفته خودش سال برابر کردی. خودی الله قاضی باش جایز جایز نیست. اونجا هزار دروغ. درست از هفت تومان امادی بیست هزار تومان. برکتش کجا هست؟ آرامشش کجا هست؟ زندگی خوبش کجا هست؟ برکت زندگیت کجا هست؟ اون رانگ زندگیت کجا هست؟ خوبی خانوادت کجا این کجا میرن؟ دروغ باشین همه میرن. پور اینجا نمیونه. فرمودن که دروغ گفتید، برکت ماموریتون برداشته میشه. راحت بگو، صدقه دختر بده برکت میآیده، برکت میآیده. خداوند مطالب میفرمایه، واجد و از دور، واجد تناب از دور، واجد تناب بکنی از دروغ، اجتناب بکنی از دروغ. دروغ بسیار زشت هست، بسیار زشت هست. در حدیث استعیب بخاری حدیث داریم که نبی مکرر مسلاهم، صلی الله علیه و هنگامی به میراک تشویر بردن و از وقتی در مسیر راه و دیدار سحنه های عجیب غریب وقتی مشاهده می کردن از جای رز شده. یه قلاب دست فرشتها بود یه آغا افتاده بود این قلاب را داخل دهنش می اینجا و اینو می کشت تا پشتش می بردن تا پشتش و دوباره اینو راها می کردن از این طرح می کشیدن این اینو که می کشید راها می کرد اینو برمیگ این راها می کر اینو می تا آخر کارش داخل قبر بین عذاب گرفتار بودن گفتا اینها کیا هستند؟ آخر پایان داستانی که جبرائیل امین تعریف میکه اون فلانی جوری بود فلان سانها مختلف تفسیر میکه گفت این آغا کذاب بوده دروگو دروغ زیاد گفته. دروغ، دروغ دروغ بیو و خاطر این عذاب گرفتار بیشدن فرشتا با قلاوها کل ده دهنم میکسن این تمام نوشته تا قیامت همین مصیبت بزرگی اونجا گذاشته هست. عزیز داخل صحیفه بخاری داریم که بدترین انسانها روز قیامت کسانی هستند که یا سعی حواله بواجبن و حواله بواجبن. بدترین انسانها اون هستند که پیش این گرو به یک میان میگن چیز چیزدیگه بیه اینجا چیزی می اونجا چیز گن دروغ. یه ای دروغ اینجا میگه یه دروغ اونجا میگه دو نفر راضی داره میکنن. اینا دو جانبه هستند نه؟ اینا, اینا اینها خطرناکن بدترین انسان‌ها روز قیامت شرار و خلق الله بدترین مخلوقات خداوندی همین‌ها هستن که اینجا هم باید شهره اونجا هم با شهره اینجا چیزی میگه اونجا چیز دیگه می میگه خداوند متعال داخل قرآن سوره منافق چی میگه این در منافقین همو کاذبن اینها کاذبیینند دروغ میأمرافیقین تا خودی یکی از علامات نفاق نبی کریم فرمودن که آیه المنافق علامت منافق سی خسلت داره سی خسلت بارز ازا حدف و وقتی سخن میگوید دروغ و ازا وعده اخلفه وعده می کند وعده خلافی و ازا اتمین خان اگر امانت گذاشته بیشه خیانت می کند پس منافق دروغو هست علامت منافق دروغ هست پس منابرین این دروغ علامت منافقین هست اذا به دردنا داره برکت معامله از بهلمی برد این انسان به خود فاجر قرار میده رو فرمودن که از تو جاب تجار فجار توجار فجارن بخاطر این دروغهایی که میگین پس برین تلاش کنیم اراده بکنیم اراده ها رو قوی بکنیم که دوباره دروغ نمیگیم دروغ ها رو سعی کنیم تعطیل کنیم گفتی با خانواده هم دروغ نگید با بچه هم دروغ نگی با حیوانا هم دروغ نگی دروغ عادت بدی هست و انسان دیگه با ذروق از خداوند مطال فاصله میگیره. گناه گناهای بسیار بزرگ هست. زارا گناه رو خود ذروق ها دوباره دنبال خودش میآورن. صفات منافقین. ان شاء اگر هفته دیگهش تمرین نشه، حتما تمرین رو بیشتر کنیم. که بیشتر تمرین کنه، سعی کنیم اینها رو دیگه کم بالاتر بگیریم. جدیتر تر بگیریم. هفته بعد تعمدی ان با پاکتری بیاییم. همه تو پاکید ما اصول اما این از که دیگه با خود ما با خدای امکنی پاک تر باشیم چون فرشته‌ها ها دارد آب و نامه ما رو می نویزتن ما انچه انجامی که کرامن کاتبین هست یالگون و هتفالون هر شبابی کن نویدونن این اینها رو یاداش میکنن پس بنابراین خود ما هم سعی کن یاداش کنیم اگر به این صورت انشاءالله حرکت کنیم زندگی پاک پاکی رو حیات تییدی خداوند مطال به ما انایت می کنده الله یه هفته دیگه هنو در مورد دروغ می او فراموش نکرد یا دهانی بکنی و الله بعد درو توان شد بعدی می به شرطی که همکاری کنی با هم دیگر با اراده قوی سعی کنی اینها رو بر بداریم